در آیات گذشته هم در سوره قارعه هم در سوره والعادیات اذا زلزلات همه اینها تخویف و تبشیر و زجر و سرزنش بود بر منکرین بر ظالمین بر کسانی که فساد عملی دارند فساد عقیده دارند حال در سوره الهاکم التکاثر یا در سوره تکاثر موضوع تزهید من دنیا است اصلش اینه که مریضی اصلی تکاثر است خب دنیا و اندوختن دنیا لذا الله تعالی در این سور بیان می فرماید که از این کنار بکشید این قدر حریص مال نباشید این قدر حریص پول و سرمایه نباشید که بزنید به سر و کله هم دیگه شب و روز جمع کنید شب و روز اندوخته کنید الله عزوجل میفرمايت الاکوم التکاثر شما را غافل کرد از قیامت غافل کرد و از قیامت دور کرد تکاثر یعنی اندوختن مال مال زیاد جمع کردن مال زیاد این در واقع هم بیان مرض است ارز کردم در این سوره های کوچک خدا تعالی در کلمات مختصر هم مریضی را مشخص می کند هم سبب مریضی را هم علاج مریضی را این بیان مرض است مرض انسان و سبب مرض همچیه تغافل است غفلت است الهاکم شما را غافل کرد تکاثر کسرت مال جمع کردن مال زیاد اندوخت کردن یعنی تفسیر کبیر گفته الهاکم حرسکم على تکثیر اموالکم اینکه شما خیلی حریص هستید بر مال اندوختن و مال زیاد جمع کردن این شما را غافل کرد از چی غافل کرد؟ انطاعت ربکم از طاعت پروردگار حتی زرتم المقابر یعنی حتی اتاکم الموت و انتم على ذلك آخرین لحظات آمده آقا دارد همیش حساب میکند تو دو هتل دبی نشسته هیچ زنگ میزند اینجا اونجا و همونجا سکته میکند عزیزی خدا مغفرتش کنه همونجا تو هتل داشت صحبت میکرد و همون جا به دستش بود قطع شد برای تجارت رفته بود اینجا خانواده هرچی الو الو کردن داد و فریاض زدن کسانی دیگر را با مشکل پیدا کردن بریم فلان جا ببینید فلانی رفتن دیدن همون جا که تلفن دستش هست رکته کرده مرده لذا تا لحظات موت شما با همین گرفتار رسید حتی زرتم مقابر البته بعضی میگویند که منظور از تکاثر فخر فروشی هست یک بار ای ای ای روزی چند نفر از ارز کنم خدمت شما که افراد در مدینه مسلمانان با هم دیگه بحث کردن اون می گفتن جمعیت ما بیشتر اونا گفتن جمعیت ما بیشتر گفتن که جمعیت از قبرستان معلوم میشه شه بریم قبرستان قبرها رو بشماریم قبور کی بیشتر هستند همینطور که گاهی تو شهرها بعضی ادعا میکنن جمعیت جمعیتی ما بیشتر قبرستانهای ما را نگاه کنید لذا تکاثر را بعضی به اون معنی گفتم ولی نه معنی اول که ارز کردم راجع هست چون بحث بحث تزهید من دنیاست. است لذا حتی زرتم المقابر معنیش اینه که تا لحظات موت تا آخرین لحظات زندگی شما را غافل کرده همین اندوختن مال همین فزونی مال از این به بعد علاج مرض است حتی زرتم المقار بر این امتداد مرضی بعضی مریضی ها زود تمام میشه انسان علاج میشه با یک آیه با یک تذکر با یک معزه اما بعضی از مریضی ها خصوص حب دنیا چنان مریضی هست که این پایانی ندارد تا آخرین روزهای زندگی انسان حتی زرتم المقابر پس بیان چیه؟ بیان امتداد مرض است کلا سوف تعلمون این علاج و درمان مرض است هرگز این نیست که شما فکر میکنید تا ابد باشید سوف تعلمون تخویف است ان قریب میدانی شما ثم کلا سوف تعلمون سپس هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید سوف تعلمون ان قریب شما میدانید کلا لو تعلمون علم اليقین حقا اگر شما بدانید ببینید اینجا یک نکتهی حضرت شا عبدالعزیز رحمه الله شا عبدالعزیز محدث دهلوی بیان فرمودند که در سوره عماه تساآلون هست کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون با سین آورده سین برای هم تقریب است سوفه هم برای تقریب هست اما سین برای تقریب بیشتر است. زود زود سوف تعلمون هم به معنی زود هست اما چرا اینجا سوفه آورده در سوره مبارکه نبع چی آورده سی علمون سین آورده جوابش اینه که در سوره تکاسر کفار مخاطب هستند از نظر کفار قیامت خیلی دور است این چیمکانش نیست بعید است لذا اونجا چون خطاب است اونجا چیست خطاب است صوفتالمون روی سخن با کفار است لذا اونجا صوفه بکار برده چون صوفه نزدیکی نزدیک را نمیگن نزدیکی که مقداری فاصله داره اونجا عقیده کفار چی شده لحاظ شده اما اینجا نه اینجا خطاب کفار نیستن با سیغی قائب در سور نبع ذکر میکند لذا در نبع مومنین مخاطب هستن و از نظر ما مومنین قیامت نزدیک است، لذا اینجا سعلمون بکار رفتند اونجا چی؟ سوف تعلمون سوف تعلمون چونکه انهم یرونه بعيدا و نراه قریبا اونا دور میبینن ما قیامت رو چی میبینیم؟ نزليك بس ان فرقه سوف يعلمون و سوف تعلمون وسيعلمون هسه الله من فرمىت چون خطاب بكفار كلا سوف تعلمون ان قريب شما ميدانين ثم كلا نفسه دوباره تكرار هرجس ان تورنيس سوف تعلمون ان قريب شما ميدانين كلا حقا لو تعلمون علم اليقين اگر شما بدانید علم یقین علم یقین کی میشه زمانی که مشاهده بکند اما اون زمان دیر شده چرا چون کہ لترون الجحیم تخویف اخروی است حتما حتما شما میبینید جهنم را ثم لترونها عین الیقین سپس حتما حتما با چشم یقین میبینید یعنی اونجا دیگه هیچ شکی نمیماند ثم لا تسألن يومئذ إذن عن النعيم سفسحمي إشما سؤال ميشيد خاص ميشيد هم مؤمن وهم كافر هم إشما سؤال ميشيد در أن روز عن النعيم أز نعمة هاي فر همه همي نعمة ها وكل هذه نعم فيسأل العبد عنها هل شكر ذلك أم كفر إنسان سؤال ميشي كأيا نعمت هارا شکر گزار و سپاس گزار بوده یا ناسپاس و کفران نعمت داشته